تلك آيات الكتاب و قرآن لام را. این آيات كتاب و قرآن روشنگر است. ربما يودد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند لرهم یأکلون و یتمتعون و یلههم الامل فسوف يعلمون بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوهای دراز سرگن و قافلشان سازد پس به زودی خواهند دانست و ما اهلکنا من قریت الا و کتاب معلوم و ما اهل هیچ دیار و شهری را حلاک نکردیم مگر اینکه مهلت و عجلی معین داشت ما تسبق من امت اجلها و ما يستأخرون. امتی بر عجل خود پیشینی میگیرد و از آن عقب نخواهد افتاد و یا ایها الذین نزل علیهم الذکر انک لمجنون و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است بی تردید تو دیوانه ای لو ما تأتینا إن این کنت من الصادقين. اگر از راست گویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری ما ننزل الملائکت الا بالحق و ما کانو اذا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 و لقد ارسلنا من قبلك کفی شیع الاولین و یقینا ما پیش از تو پیامبرانی در میان گروهها و امت های نخستین فرستاده این و ما یأتیهن من رسول الا کانو بهی یستهزئون هیچ به سوی آنها نمی آمد مگر آنکه مسخریاش می‌کردند کذلک <تصفيق> نسلكه فی قلوب المجرمین این چون این آنتغذیب و استهزاء را در دلهای مجرمان راه میدهیم، لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین آنها به آن قرآن ایمان نمیآورند. و به راستی سنت و روش پیشینیان نیست چون این گذشته است ولو لو فتحنا علیهم بابا من السماء فضلو فیه یعرجون و اگر دری از آسمان بروی آنها به گشائیم که پیوسته در آن بالا روند لقالون ما بل نحن قوم باز هم میگویند یقینا ما را چشم بندی کرده اند بلکه ما گروهی سهر شده ایم و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها و به ما در آسمان برچهایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم و من كل شیطان رجیم و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین مگر آن کسی که دزدان گوش فرا دهد پس در آن صورت شهابی آشکار دنبالش کند وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون و زمین را گستردیم و در آن کوهای اوستباری افکندیم و از هر چیز سنجیده در آن رویاندیم و جعلنا لكم فیها معايش وملستم له برازقین. و برای شما انواع وسایل زندگی و همچنین برای کسانی که روزی دهنده آنها نیستی در آن قرار دادیم. و این این شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست و ما جز به اندازه ایم آن را نازل نمی کنیم. و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه و ما انتم لهو بخازنین و ما بادها را و گیاهان فرستادیم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 و لقد علمن المستقدمین منکم و لقد علمن المستأخرین و به یقین حال گذشتگان شما را دانسته و حال آیندگان را هم به خوبی دانسته ایم و این هو یحشرهم اینه حکیم علیم و ای پیامبر بیگمان پروردگار تو همه آنها را در قیامت مشهور میکند همان او حکیم داناست ولقد خلقنا من صلصال من حمئ به راستی ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بوینا که ای بود آفریدیم والجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ وَجَنَّ از أَذَانْ أَزْ آتَش سُوزَان آفریدین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من من مسنون. و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود همان آمن آفریننده بشری از گل خشگیده ای که از گل بوینا که تیره ای گرفته شده هستم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 پس همه فرشتگان با هم دیگر سجده کردند الا ابلیس مع جز ابلیس که سرپیچی کرد از آنکه با سجده کنندگان باشد قال ابلیس ما خداوند فرمود ای ابلیس تو را چه شده که با سجده کنندگان همراه نیستی قال لم اكل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمائم مسنون گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بوینا که تیر ای آفریده ای سجده نخواهم کرد قال منها فإنك رجیم. خداوند فرمود از آن بهشت بیرون شو بیگمان تو رنده شده ای و این علیک اللعنت الى يوم الدین و همان تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود قال رب الى يوم ابلیس گفت پروردگارا مرا تا روزی که مردم برنگی میشوند می شوند محلت ده خداوند فرمود یقینا تو از مهلت یافتگانی الی یوم الوقت المعلوم تا روز وقت مقرر و معین شده قال ربی بما أغويتنی لأزینن لهم فی الأرض ولأغوینهم اجمعین گفت پروردگارا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 خداوند فرمود این راه مستقیم است که به من میرسد. این عبادی لیس لك سلطان الا من اتبعک من الغاوین یقینا <تصفيق> تو را بر بندگانم تسلطی نیست مگر بر آن گمراهانی که از تو پیروی می‌کنند. و این جهنم لموعدهم اجمعین. و بی گمان جهنم آدگاه برای همه آنهاست لها سبعت ابواب باب منهم جزء مقسون برای آن هست برای هر دری گروهی از آنها تقسیم و معین شده اند این جنات و عیون. یقینا پرهیزگاران در باقهای بهشت و در کنار چشمه ها هستند بسلام آمنین. به آنها گفته می شود به سلامت و ایمنی به آن باغ ها وارد شوید و نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور متقابلين آنچه در دلهایشان از کینه و حسد بود بیرون کشیدیم برادران بر تخت ها رو به روی یکدیگر قرار دارند لا يمسهم فيها وما هم منها بمخرجين. در آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنها نمیرسد و هیچگاه از آنجا بیرونشان نرانند نب عبادی انی انا غفور الرحیم ای پیامبر بندگانم را خبرده که یقینا من آمرزندی مهربانم و ان عذابی هو العذاب الالیم و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است و عن ضیف ابراهیم و آنها را از مهمانان ابراهیم خبرده اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اننا منكم وجلون چون بر او وارد شدند و سلام گفتند ابراهیم گفت ما از شما میترسیم قالوا لا تخجل اننا نبشرك بغلام علي گفتند نترس بیگمان ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم قال على ام اممسنی الكبر فبما تبشرون. ابراهیم گفت آیا به من این بشارت می دهید با اینکه پیری به من رسیده است پس به چه چیز بشارت می دهید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 ابراهیم گفت و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود آنگاه گفت پس ای فرستادگان خدا مقصود شما چیست قالو انا ارسلنا الى قوم مجرم گفتند همانا ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم تا آنها را حلاک کنیم آل انا لمنجوهم جز خاندان لود که ما حتما همه آنها را نجات خواهیم داد إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ مَغَر او که مَا قَدَّر دَاشْتِيم او قَطْعَنْ از بازماندگان باشد فلما جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ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 بلکه ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند و, اتینا و, و ما حق را برای تو آورده ایم و ما قطعا راست گویانیم فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تؤمرون. پس پاسی از شب گذشته خانواد با خود بردار ببر و خودت به دنبال آنها برو و کسی از شما پشت سرش ننگرد و به آنجایی که فرمان یافته اید بروید و قضینا ذلك ذالک الامر اندابر ها اولائی مقطوع مصبحین و ما این امر را به او وحی کردیم که همانا گاهان همه آنها ریشکن خواهند شد و اهل المدینه و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لود آمدند قال این ها ضیفی فلا تفضحون لوت گفت به راستی اینها مهمانان من هستند پس مرا رسوا نکنید و اتقو الله ولا تخزون و از خدا بترسید و مرا خار نسازید قالو اولم ننهک عن العالمین آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردمان نه نکرده بودیم و لها بناتی این کنتم فاعلین لود گفت اینها دختران من هستند با آنها ازدواج کنید اگر انجام دهنده کاری هستید لعمو که انهم لفی سکرتهم سوگند به جان تو ای پیامبر که آنها در مستی خود سرگردانند فأخذتمو صیحت مشرقین پس هنگام طلوع آفتاب صیح آنها را فرو گرفت فجعلنا علیه سافلها و امطرنا علیه وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّل آنگاه بالای آن آبادیها را پایین قرار دادیم و زیرو رو کردیم و بر سر آنان سنگهایی از سنگ گل بارانی دیم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بیگمان در این سرگذشت هایی برای هوشیاران است و همانا مقیم و همانا آن شهرهای ویرانه بر سر راه کاروانیان پا برجا فی ذلك للمؤمنین بیگمان در این نشانه ای برای مؤمنان است وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَتِ لَظَالِمِينَ و بیشک اصحاب ای کستم کار بودند مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مبین. پس ما از آنها انتقام گرفتیم و شعرهای ویران شده این دو قوم بر سر راه آشکار است و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلين و به راستی اصحاب حجر پیام بران را تقزیب کردند و آتینا آیاتنا فکانو عنها معرضین و ما آیات خود را به آنها دادیم پس آنها از آنان روی گردان بودند و ینحتون من الجبال بیوتاً آمینین آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوها خانه هایی می تراشیدند فأخذتهم مصبحین پس صبح گاهان سیه آنها را فرو گرفت فما عنهم ما و آنچه را به دست آورده بودند عذاب الهی را از آنها دفع نکرد وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و, فاصفح الصفح و ما آسمانها و زمین و را که میان آن دوست جز به حق نیافریدیم و قیامت قطعا خواهد آمد پس ای پیامبر به طرز شایسته ای گذشت کن ان ربك هوالخلاق العليم بی گمان پروردگار تو همان آفریننده داناست ولقد اتیناك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم و به راستی ما به تو سبع المسانی و قرآن عظیم دادیم لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ از هرگز چشم خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروههایی از آنان را از آن بهر من ساخته ایم ندوز و بر آنها غمگین نباش و بال خود را برای مؤمنان فرو دار و قل و بگو همانا من هشدار دهنده آشکارم کما انزلنا على المقتسمین و آنها را از عذابی بترسان همان گونه که بر تقسیم کنندگان نازل کردیم الذينا جعلقرآ نبیی همان کسانی که قرآن را تقسیم کردند فوربك نئلا نه پس سوگند به پروردگارت گارت در قیامت از همه آنها سوال خواهیم کرد. عما كانوا يعملون از آنچه میکردند فصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين پس ای پیامبر به آنچه مأمور شده ای آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان بیگمان ما مسخره کنندگان را از تو دف خواهیم کرد الذي مع الله الهن ااخم فسوف کسانی که معبود دیگری با خدا قرار میدهند پس به خواهند دانست. و نعلم انک یضیق صدرك بما یقولون و به ما میدانیم که سینه تو ای پیامبر از آنچه آنها میگویند تنگ می شود فسبح بحمد ربک و کم من الساجدین پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی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 و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. و در آنها برای شما زینت و زیبایی است چون شام گاهان از صحرا باز میگردانید و چون صبح گاهان میفرستید. و تحمل اثقالكم الى بلد لم تکونوا بالغیه إلا بشق الانفس این ربکم لرعوف الرحیم و آنها بارهای سنگین شما را به شهری که جز بارنج و مشقت زیاد به آن نمی رسیدید حملی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 و چیزهایی را می که نمی و الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین و بر خداست که راه راست را به بندگانش بنمایاند و برخی از آن را هابی راه و کج است اگر می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد. هوالذی أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیم. او کسی است که از آسمان برایتان آبی نازل کرد. که از آن آب آشامیدنی است و از آن گیاهان و درختانی میروید که حیوانات خود را در آن میچرانید چرانیید. یون بتلکم به الزرع والزیتون والنخيل و ومن كل الثمرات این في ذلك لقوم خداوند با آن آب برای شما زراعت و زیتون و درختان خرما و های انگور و از همه نوع میوه ها میرویاند بیگمان در این نشانه ایست برای گروهی که اندیشه میکنند و سخّر لكم الليل و النهار والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون با شب و روز و خورشید و برای شما مسخّر کرد. و ستارگان نیز به فرمان او مسخر هستند. بی تردید در این نشانی است برای گروهی که خرد می برند. و ما در آلمی فی الأرض مختلفا الوانه. این فی ذالک لآیة لقوم يذكرون. و همچون این مسخر گرداند، ان که برای شما در زمین بر های گوناگون آفرید مسلما در این نشانه است برای گروهی که پند میپذیرند و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حليت تلبسونها وتستخرج منه حلي تنتلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و او كسيست كدار يار مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی که آن را به پوشید بیرون آرید و کشتی را می بینی که در آن روانند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که شکر گذارید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 وعلم م واب مجمعی هم یهتدون. و نیز نشان ها قرار داد و در هنگام شب به وسیله ستارگان راه می یابند فهماییاخلوق که یخلق. ياخلوق افللتدون آیا کسی که می آفریند؟ مانند کسی است که نمی آفریند آیا پند نمی گیرید و نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و اگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید توانید آن را بشمارید بی تردید خداوند آمرزنده مهربان است والله يعلم ما تسرون و ما تعلنون و خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند. والذین يدعون و یدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و هم يخلقون و آنهایی را که به جای الله میخوانند چیزی را نمیآفرینند و خودشان آفریده میشوند اموات غیر و وما يشعرون ان آنها مردگانی هستند غیر زنده و نمیدانند در چه زمانی برانگیخته میشوند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 و خودشان مستكبرند لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرین قتعا آنچه را پنهان میدارند و آنچه را آشكار میكنند میداند بیگمان او مستكبران را دوست ندارد و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین و چون به آنها گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است گویند افثانه های ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا سا ما يذنون تا در روز قیامت بار گناهان خود را به طور کامل بردوش دوش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 کسانی که به آنها علم داده شده گویند همانا رسوایی و سختی امروز بر کافران است <سؤال> <سؤال> <سؤال> الذین توفاهم الملائکه تظلمی <ضالمي> انفسهم فالقر <فعل> <سؤال> السلام ما كنا نعمل من سوء بلا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 مسلما خداوند به آنچه انجام میدادید داناست و ابواب جهنم خالدین فيها فلبیسه مثوى المتكبرین پس از درهای جهنم داخل شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود چه بد است جایگاه مستكبران.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 این ان جاویدان است که به درآیند نرها از زیر درختان آنجاری است در آنجا هرچه بخواهند برایشان مهیاست. این گونه خداوند پرهیزگاران را پاداش می‌دهد. الذين تتوافهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنة بما كنتم تعملون همان کسانی که فرشتگان رحمت جانشان را می‌گیرند در حالی که پا آنها میگویند سلام بر شما به خاطر آنچه که می کردید به بهشت وارد شوید. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون آیا کافران جز این انتظار دارند که فرشتگان برای گرفتن جانشان به سراغ آنها بیایند یا فرمان پروردگارت برای عذابشان فرار سد کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند و خداوند به آنها ستم نکرد لیکن آنها به خویشتان ستم میکردند فصابهم ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به پس بدیهای آنچه را که میکردند به آنها رسید و آنچه به آن مسخره میکردند بر آنان فرود آمد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 كذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ المبین و كسانیكه شرك ورزیدند گفتند اگر خدا میخواست نه ما و نه غیر از او هیچ چیزی را پرستش نمیکردیم و نه چیزی را بدون فرمان او حرام میساختیم کسانی که پیش از آنها بودند نیست چنین این کردند پس آیا بر پیام بر آن ابلاغ آشکار مسئولیت دیگری هست ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم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 که همه مردگان را برمیانگیزد ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. لیبین لهم الذی اختلفون فیه و الذین کفرو انهم کانو کاذبین تا آنچه را که در آن اختلاف می‌کردند برایشان روشن سازد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 پس بلا فاصل موجود می شد. والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. و کسانی که پس از آنکس ستم دیدند در راه خدا هجرت کردند. یقینا در این دنیا جایگاه خوبی خواهیم داد و مسلماً پاداش آخرت بزرگتر است. ای کاش میدانستند. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می میکنند. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إلیهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و پیش از تو ای یامبر جز مردانی كه به آنها وه کردیم نفرستادیم پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید. بالبينات و الزبور و الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. کانها را با دلایل روشن و کتابها فرستادیم. و ما این قرآن را بر تو نازل کردین تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است و باشد که آنها بیندیشند افأمین <تصفيق> الذین مكروا السیئات این یخسی الله بهم الأرض او یأتیهم العذاب من حیث لا يشعون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 پس نتوانند که ما را ناتوان کنند و بگریزند او یاخذهم على تخوف ربكم یا آنکه آنان را در حال ترس و وحشت بگیرد پس بی تردید پروردگار شما رؤوف و مهربان است أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهماخرونآیا آنها به چیزهایی كه خداوند آفریده است نمینگرند که سایههایش سایه هایش از راست و چپ سجد کنان برای خداوند در حرکتند و آنها آجز و فروتن هستند و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابة و وهم و هم لا يستکبرون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 و آنچه فرمان میابند انجام دهند وقال الله لا تتخذوا و خداوند فرمود دو معبود را نگیرید فقط او معبود یگانه است پس تنها از من بترسید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 سپس هنگامی که آن ناراحتی را از شما برطرف ساخت آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک میآورند <تصفيق> بما فسوف تعلمون. تا آنچه را که به آنها داده کفران کنند پس چند روزی بهره گیرید که به زودی خواهید دانست و یجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناهم و آنها برای چیزی که نمیدانند، دانند سحمی از آنچه روزیشان داده ایم قرار می دهند به خدا سوگند البته از آنچه افترامی بندید بازخواست خواهید شد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 یا در خاک پنهانش کند آگاه باشید آنچرا که می کنند بد است لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ برای کسانی که به سرای آخرت ایمان ندارند مثل و صفت بد است و برای خدا وانت برتر است و او پيروزمند و حکیم است. ولو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا فا جَاءَ أَجَنُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ و اگر خداوند مردم را به خاطر ستمشان معاخزه می کرد هیچ جنبنده ای بر روی آن باقی نمیگذارد ولیکن آنها را تا زمان معین مهلت می دهد پس هنگامی که اجلشان فرا رسد نساعتی تأخیر می کنند و ن ساعتی نیشی میگیرند ويجعلون لله ما یكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون و آنها برای خدا چیزهایی قرار میدهند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 والله الله انزل من السماء ماء فاحياء به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون و خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. پس با آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند بیگمان در این نشانه است برای گروهی که می شنوند و این لکم فی الانعام لعبره نسقی کم ما فی بطونه من بین فرث و دم لبن خالصا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 و من ثمرات نخيل و الأعنب تتخذون منه سكر و حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. و نیز از بهای درختان خورما و انگور مسکرات ناپاک و روزی خوب و پاکیز میگیرید. بیگمان گمان در این نشان است برای گروهی که خرد میورزند و اوحى ربک الى ان نتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و من ما يعرشون. و پروردگار تو زنبور اصل الهام کرد که از کوها و درختان و داربست هایی که مردم می‌سازند خانه هاي برگزين ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء لنا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 در این نشانه است برای گروهی که می‌اندیشند والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِ nursingِ نِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 و من دعمت خدا آنها کفر میبرزند و من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون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 پس برای خدا مسائل مزنید یقینا خداوند میداند و شما نمیدانید ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و من رزقناه من رزقا حسنا و من رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستمون الحمدلله بل اکثرهم لا يعلمون خداوند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 و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد شاید سپاس گذارید اَلَمْ <ساس> يَرَوْ <ساس> اِلَى الْطَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ آیا آنها به پرندگانی که در جو آسمان مسخر فرمان خدا هستند نمیننگرند مسلما در این امر نشانه هایی است برای گروهی که ایمان میآورند والله جعل لكم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 و, و خداوند برای شما از خانه هایتان جای آرامش قرار داد و از پوست چهار پایان نیز برای شما خانه قرار داد که آن را در روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان سبک میابید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اساسی و متا تا مدت معینی قرار داد و الله جعل لكم مما خلق غلالا و جعل لكم من الجبال اکنانا و جعل لكم وجعل جعل لکم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل بأسكم كذلك يتم نعمته علیکم لعلكم تسلمون و نیز خداوند از آنچه آفریده است سایه برای شما قرار داده و از کوه ها برای شما قرار داده است و برای شما جامعه هایی قرار داد که شما را از گرما و سرما حفظ می کند و جامعهایی هایی که شما را در هنگام جنگ و درگیری گیری مسون می دارد این گونه خداوند نعمت را بر شما تمام می کند. باشد که تسلیم فرمان او شوید فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پس ای پیامبر اگر آنها رو گرداندند جز این نیست که بر عهده تو ابلاغ آشکار است یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها و آنها نعمت خدا را میشناسند، شناسند سپس انکارش می کنند و بیشترشان کافرند و نبعث من كل امت شهيدا ثم لا یؤذن للذین كفروا ولا هم يستعتبون و روزی که از هر امتی گواهی برمی آنگاه به کسانی که کافر شدند اجازه سخن گفتن داده نمیشود و نه از آنها تقاضای توبه می شود و اذا رأ الذین ظلم العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.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 و کسانی که شرک ورزیدند هنگامی که شریکان خود را ببینند میگویند پروردگارا اینان شریکان ما هستند کسانی که ما به جای تو می خاندیم. آنگاه معبودانشان به آنها پاسخ میدهند به راستی که شما دروغگو هستید و الى الله وضل عنهم ما كانوا یفترون و در آن روز همگی در پیشگاه خدا تسلیم شوند و تمام آنچه را افترا بستند از نظر آنان گم و نابود شوند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 و عليك الكتاب کتابت بیانا لکل شیئ و هدن و رحمت و بشرال المسلمین و روزی که در میان هر امتی گواهی از خودشان برانها آنها انگیزیم و تو را آنها گواه آوریم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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وبعهد و پیمان خدا وفا کنید هرگاه عهد و پیمان بستید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 ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم و سوگند را وسيله خیانت وفريب فریب در میان خود قرار ندهید که مبادا گامی بعد از استفاریش متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا بدی آن را در دنیا بچشید و در آخرت برای شما عذاب بزرگی خواهد بود.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 ما عندكم يا فدو وما عند الله باق ولنجزين الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست باقی است باقط آن به کسانی که صبر کردند پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند میدهیم. من عمل من مذکر او أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبا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 فَإِذَا قَرَهْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس هنگامی که قرآن میخانی از شر شیطان رند شده به خدا پناه ببر اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بیگمان او بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند هیچ تسلطی ندارد اینما علی الذین تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی خود برگزیده اند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 و هنگامی که آیه ای را به جای آیه دیگری جای گذین کنیم و خداوند به آنچه که نازل می داناتر است آنها گویند بیگمان تو افترازنی بلکه بیشتر آنها نمیدانند قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِهُ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ و به راستی ما می گویند. همانا بشری این آیات را به او آموزش میدهد در حالی که زبان کسی که اینها به او نسبت میدهند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است این الذين لا یؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عزیم. یقینا کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است اینما یفتری الكذب الذین لا يؤمنون بآیات الله و اولائی هم الكذبون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 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ذ ب بأن مستحب حياة الددنيا على الاخرات وَ الله لا القوم الكافر این بخاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و همان خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند.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 لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون بدون شک آنها در آخرت زیانکارانند ثم این ربک للذین هاجرو من بعد ما فتنو ثم جاهدو و صبروا. ثم جاهد و صبر و این من بعدها لغفور رحیم آنگاه پروردگار تو برای کسانی که هجرت کردند بعد از آن که شکنج کشیدند سپس در راه خدا جهاد کردند و صبر نمودند بیگمان پروردگارت بعد از این رنج ها مهربان است یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون به یاد آورید روز قیامت آن روزی که هر کس به دفاع از خود به مجادله برمیخیزد و به هر کسی پاداش آنچه کرده است به طور کامل داده میشود، و به آنها ستم نخواهد شد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 آنگاه خداوند به کیفر آنچه که انجام میدادند لباس گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانید. و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون و به راستی پیامبری از خودشان به سوی آنها آمد پس او را تکذیب کردند انگاه در حالی که ظالم بودند عذاب الهی آنها را فرو گرفت فكلو مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمه الله إن كنتم اياه تعبدون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 و نه از حد تجاوز کند پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب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 متاع قليل ولهم عذاب علیم. در این دنیا بهری اندک نصیبشان میشود و برای آنها در آخرت عذاب دردناک است وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل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 سپس پرورد گارتو برای کسانی که از روی جهالت بدی کردند آنگاه بعد از آن توبی کردند و اعمال خود را اصلاح کردند یقینا پرورد گارت بعد از آن آمرزندی مهربان است این ابراهیم کان امته قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین ابراهیم به تنهایی امتی بود فرمانبردار خدا حنیف بود و هرگز از مشرکان نبود شاکرا اجتباه و هداه الى صراط مستقیم شکر گزار نعمتهای خدا بود خداوند او را برگزید و به راه راست هدایتش نمود و آتیناه فی الدنيا حسنتا و انهو فی الآخرة لمن الصالحین ما در دنیا به اونیکی عطا کردیم و قطعا او در آخرت از صالحان است ثم اتبع ملة و كان من المشرقیم. سپس به تو ای پیامبر وحی کردیم که از آین ابراهیم که حنیف بود و از نبود پیروی کن اینما جعل السبت علی الذین اختلفو فیه و این ربک لیحکم بینهم یوم القیامت فیما کانو فیه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 پس چنان مجازات کنید که شما را مجازات کرده اند و اگر صبر نمایید مسلما آن برای صابران بهتر است وصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكف في ضيق مما يمكرون ای پیام پیامبر صبر کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوهگین مشو و از آنچه مکر میبرند دلتنگ مباش این الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون همانا خداوند. با کسانی است که تقوا بیشه کردند و کسانی که نیکوکارانند